حکایت یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود و تی بلحچتی و معلم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشری او معاملتی داشت زجر و توبیخی که بر کودکان کردی در حق وی روا نداشتی و وقتی که به خلوتش دریافتی گفتی نهان چنان به تو مشغولم ای بهشتی روی که یاد فیشتنم در زمیر می آید. زدیدنت نتوانم که دید در بندم وگر معاینه بینم که تیر می آید. باری پسر گفت چنان که در آداب درس من نظری می فرمایی در آداب نفسم نیز، تعمل فرمای، تا اگر در اخلاق من ناپسندی بینی که مرا آن پسند همی نماید، بر آنم مطلع فرمایی تا به تبدیل آن سعی کنم. گفت ای پسر، این سخن از دیگری پرس، که آن نظر که مرا با توست، جز هنر نمی بینم، چشم بدندیش که برکند باد، عیب نمایت هنرش در نظر، بر هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند آن یک هنر،